میخواست دست مرا را و خدافزی کند دستش را نگه داشتم و گفتم کمال را فدا مرخص کنید مادرش خیلی خوشحال حد شد گفت مادرش که اینجا نیست چرا بی خود میگویید شما خوشحال خواهید شد برای من کافی است دختر جان از شما فقط یک خواهش دارم اگر درباره این بچه مچه ها چیزی می دانید، به من بگویید. من با آنها صدمه ای نمی زنم، اما بساطشان را جمع می کنم. در این صورت هم برای شما بهتر است و هم برای من. بالاخره دیر یا زود من کلک همه را می کنم. بساطشان را ور می چینم. زیرا این خودش یک کلید موفقیت من است. وقتی به علا حضرت حالی کنم که در عرض پنج ماه این بچه بازی ها را از بین بردم، اتمینان او به من بیشتر می شود و من آسانتر می توانم ضربه خود را به او وارد آورم. این را به شما بگویم. اگر از اول می دانستم که آزادی یکی از بچه های بازیگوش را از من می خواهید با این آسانی موافقت نمی کردم. ابدا خیال مننت گذاشتن ندارم. نه. این اخلاق من نیست. اما جدم من سمیمانه از شما توقع دارم که دیگر از این گونه خواهش ها از من نکنید.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 از خانم خدافی کنید. اگر به آقا نامه نوشتید از قد مسسران برسانید و بگویید هر کاری داشته باشد انجام خواهم داد. پیش خدمت را صدا زدم. دستور دادم که شوفرش را خبر کنند. او را تادم دم در مشاید کردم و باز به سالن برگشتم. روی صندلی راحتی لم دادم. یک گیلاس دیگر لیکور سرکشیدم و آرام در فکر فرو رفتم.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 اینها مانند بخارهای کیفاور مرا گیج کرده بودند. نه، اینطور نیست. اگر این امتیازات صد برابر هم میشد، در مقابل یک آن پرواز بر بالاهای گشوده عشق، آن هم عشق بیریایی که بین من و استاد جریان داشت، هیچ بود. چطور من می‌توانستم با این مرد که همه چیز را از دریچه چشم های خودش قضاوت می کرد و آنجایی را که خودش ایستاده بود مرکز زمین و زمان و عالم لایتناهی می دانست زندگی کنم چطور من می توانستم با چنین مردی زندگی کنم که وجود من را نمی و فقط نام خانواده بزرگ مرا دوست داشت و آن را هم می خواست وسیله تازهی برای ترقی و تعالی خودش کند فکرش را بکنید مرا میخواست به زنی بگیرد که در مهمانی های درباری اروپا دست زیر بازوی او اندازم تا او بتواند همه جا ببالد که خوشگل ترین زن را دارد مرا میخواست به زنی بگیرد تا تشنگی جاه او تسکین یابد میخواست شوهر من بشود تا خانه ام داشته باشد بر تخت راحت بخواهد غذای لذیذ بخورد و آسایشش تمنی گردد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 یک زن برای تأمین زندگی داخلی و مراقبت بچه هایش میخواست و زنهای فراوان برای تسکین تمانناهای گندیده جسمش یک چنین زندگی را به من پیشنهاد میکرد یادتان نرود من از زندگی پر از تفریح و ایشون نوش و فرنگ بیزار شده بودم فقط برای اینکه آنجا مرا همه دوست داشتند و من کسی را پیدا نمیکردم که ی عشق و مهربانی من باشد چرا در فرنگستان تنفر به من دست داد زیرا ناگهان خود را بیکس و بیچاره احساس کردم دیدم هنرمند نیستم و این تنها تسلی خاطر من هنر نقاشی نگاه پر از لبخند و آفتاب خود را از من روی گردانده بود و حال در ایران کسی را پیدا کرده بودم که هم هنرمند بود و هم من دوستش داشتم همینطور که روی سندلی راحت لمیده بودم آتلیه او در خاطرم نقش بست دیدم زیباترین جاهای دنیا برای من آتلیه اوست آنجا که آدمهایی مثل من نشستند و دور تا دور همه به من نگاه می کنند آتلیه او جای امنی بود هیچ کس به من به چشم هیز یا از روی کین توزی نگاه نمی کرد. مردمی که آنجا زندگی داشتند آنهایی بودند که من در عالم تصور خود جلوگرشان می ساختم اما نمی توانستم آنها را به قالب زنده و جاندار در آوره. در آتلیه او اوالمی که دل من شیفته ادراک آنها بود شکل به خود گرفته بود چقدر من از خنده دخترهایی که بلال گاز میزدند خوشم می‌آمد قیافه درویش مرحب با چشمهای درشت و ابروهای پرپشتش پیراهن سفید و عبای ابریشمینش مارگیری که میخواست سر مار را گاز بگیرد شاعری که روی تخت پوست کنار منقل نشسته بود و داشت چای میریخت اینها همه برای من آشنا بودند هر کدام را روزی در زندگی خود دیده بودم ناگهان قیافه پریشان استاد در نظرم جلوگر شد احساس کردم که منتظر من است و من باید به او کمک کنم یاد حرف سرتیب افتادم دیدم در خطر است و هر آن ممکن است که حادثه‌ای برای او رخ دهد گفته بود آدم ناراحتی است میخواستم فوری به خانه‌اش بروم اما دیر وقت بود لازم بود که برای نجات استاد نه برای مبارزی که او در پیش داشت احتیاط کنم دیگر حالا پس از این ملاقات با سرتیپ پس از آن که تقاضای به این مهمی من مورد اجابت قرار گرفت واضح بود که من باید جان استاد را از بلایی که دور سر او پرپر میزد حفظ کنم ساعت یازده شب بود از یازده هم گذشته بود به خانه استاد تلفن کردم هر چه زنگ زدم کسی جواب نداد ممکن بود که خودش خانه نباشد او گاهی شبها دیر وقت به خانه می آمد. گاهی دیروقت به گردش میرفت اما چرا آقا رجب جواب نمیداد؟ دو سه بار تلفن کردم اما کسی جواب باید میداد ترس عجیب به من دست داد یقین کردم که حادثهی باید در آن خانه اتفاق افتاده باشد ناگهان صدای در خانه آمد دلم هر ریخ پایین این وقت شب پرسیدم کیست؟ معلوم شد که پیش خدمت های هتل دارند میروند. آیا استاد را گرفته اند. بعید نبود. از آنچه که سرتیب می میگفت، باید دیر یا زود چنین انتظاری را داشت. شکی نیست که شهبانی ردپایی پیدا کرده بود. کوشیدم حوادث را دنبال هم حلقه حلقه زنجیر کنم. چند روز پیش دو سفر راه هنگام پخش بیانیه گرفته بودند. محسن کمال را توقیف کردند. از او نشانی خانه ای را میخواستند که در آن پلیکوپی و اوراق چاپ وجود دارد، رئیس شهربانی استاد را مرد ناراحتی می و میگوید کلا که همه را میکنم این بساط را ورمیچینم. آیا این اعلام خطر نبود؟ کاش میشد همین این شب استاد را خبر کرد. کم کم خصه روز و دوندگی پذیرایی و، کیفو یک گیلاس ویسکی و لیکور مرا داشت بیحال میکرد مانند آدمهای تبدار در زانوهای خود احساس درد کردم و آشفته و ناراحت خوابیدم صبح روز بعد سا تلفن کردم اسطراب من بیهوده نبود پرسیدم دیشب چرا کسی پای تلفن جواب نمیداد گفت کسی نبود جواب دهد پرسیدم رجب کجا بود؟ گفت دیروز او را گرفتند. گفتم آخر چرا؟ گفت معلوم نیست. سبانم بند آمد. او حتما احساس کرد. اما خودش را نباخت. برای دلداری من گفت حتما چیز مهمی نیست. یقینا مرخصش میکنند.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 خدافز فرنگیس گوشی را گذاشت و رفت من مدتی آن را در دست نگه داشت و سرم را به دیوار تکیه داده بودم قسمت نبود که دیگر او را ببینم